مصنوی معنوی مولوی برنامه 1 پ و دوم. مزاح گفتن درزی و ترک را از قوت خنده بسته شدن دوچشم تنگ او، و فرصت یافتن درزی <متدقی> <متدقی> ترک خندیدن گرفت از داستان چشم تنگش گشت بسته آن زمان پاره دزدید و کردش زیر ران از جز حق از همه احیانهان حق همه دید آن ولی ستار خوست، لیک چون از حد بری غماز اوست ترک را از لذت افسانش رفت از دل دعوی پیشانش اطلس چه، دعوی چه، رهن چی، ترک سرمست است در لاغ اچی لابه کردش ترک که از بحر خدا لاغ می گو که مرا شد مغتزا. گفت لاغ خندومین آن که فتاد از قهقه او بر قفا پاره اطلس سبک برنیفه زد. ترک غافل خوشمزاهک میمزد همچنین بار سوم ترک خطا گفت لاغ گوی از بحر خدا گفت لاغ خندومین تر بار کرد او این ترک را کلی شکار چشم بسته، عقل جسته موله ها مست ترک مدعی از قهقه ها پس سبم از قبا دزدید شاخ که زخندش یافت میدان فراخ چون چهارم بار آن ترک خطا لاغ از آن استاد همی کرد اقتضا رحم آمد بر بیان استاد را کرد در باقی فنو بیداد را گفت مولع گشت این مفتون درین بی خبر کینچه خسار است و غبین بوسه افشان کرد بر استاد او که به من بهره خدا افسانه گو ای فسانه گشته و محو از وجود چند افسانه بخواهی آزمود تر از تو هیچ افسانه نیست بر لب گور خراب خیش ایست ای فرو رفته به گور جهل و شک چند جوی لاغ و دستان فلک تا بکی نوشی تو اشوه این جهان که نه عقلت ماند بر قانون نه جان لاغ این چرخ ندیم کرد و مرد آبروی صد هزاران چون تو برد می میدوزد این درزی آم جامه سالگان طفل خام لاغ او گرباغ ها را داد داد چون دیامد داده را برباد داد پیرت تفلان شسته پیشش بحر کد تا با و نس او لاغی کند گفتن درزی ترک را هی hey, خاموش کن، اگر مزاحک دیگر گویم، قباد تنگ آید. گفت درزی ای تواشی، برگذر، وای بر تو گر کنم لاغ دگر. پس قبایت تنگ آید، باز پس، این کند با خیشتن خود هیچ کس خنده چه رمز یر دانستی تو به جای خنده خون بگرستی بیان آنکه بیکاران و جویان مثل آن ترکند و عالم غرار غدار همچو آن درزی و شهوات و زنان مزاحک گفتن این دنیاست و عمر همچو آن اطلس پیش این درزی جهت قبای بقا و لباس تقوا ساختن اطلس عمرت به مقراز شهور برده پاره پاره خیات غرور تو تمنا می بری کختر مدام لاغ کرده سعد بوده بر دوام سخت می تولی ز تربیات او بزدلال و کینب و آفات او سخت می رنجی ز خاموشی او بزنحوس و قبض و کینکوشی او که چرا زهره طرب در رقص نیست بر سعود و رقص سعد او ماییست اخترت گوید که گر افزون کنم لاغ را پس کلیت مغبون کنم تو مبین قلابی این اختران عشق خود بر قلب زن بین ایمهان مثل آن یکی میشد شد بره سوی دکان پیش ره را بست دیدو از زنان پای او می سخت. از تحجیل و راه، بسته از جوق زنانه همچو ما رو به یک زن کرد و گفت، ای مستحان، هی چه بسیارید، ای دختر چگان؟ رو به دو کردن زن و گفت، ای امین، هیچ بسیاری ما منکر مبین، بین که با بسیاری ما بر بسات تنگ می آید شما را انبسات در لواته می فتید از قهت زن فائل و مفعول رسوای زمان تو مبین این واقعات روزگار که فلک می گردد اینجا ناگوار تو مبین تحشیر روزی و معاش تا مبین این قحط و خوف و ارتعاش بین که با این جمله تلخی های او مرده اویید و ناپروای او رحمت ایدان امتحان تلخ را نقمت ایدان ملک مرو و بلخ را آن براهیم از تلف نگریخت و ماند این براهیم از شرف بگریخت و راند آن نسوزد وین بسوزد ای عجب نعل معکوس است در راه طلب باز مکرر کردن صوفی سوال را گفت صوفی قادر است آن مستعان که کند سودای ما را بی زیان آن که آتش را کند ورد و شجر هم تواند کرد این را بی ضرر آن که گل آرد برون از عین خار هم توانت کرد این را بهار آنکه زو هر سرو آزادی کند قادر است ارغس را شادی کند آنکه شد موجود از وی هر عدم گربه دارد باقیش او را چکم آن که تن را جان دهد تا هی شود گر نمیراند زیانش کی شود خود چه باشد گر ببخشد جواد بنده را مقصود جان بی اجتهاد دور دارد از ضعیفان در کمین مکر نفس و فتنه دیو لعین جواب دادن قاضی صوفی را گفت قاضی گر نبودی امر مر ورنبودی خوب و زشت و سنگ و دور ورنبودی نفس و شیطان و هوا ورنبودی زخم و چالیش و وقا پس بچه نام و لقب خاندی ملک بندگان خیش را ای منتحک چون بگفتی ای صبور و ای حلیم چون بگفتی ای شجاع و ای حکیم صابرین و صادقین و منفقین چون بودی بی‌رهزن و دیو لعین رستم و همزه و مخنص یک بوده علم و حکمت باطل و مندک بوده علم و حکمت بحر راه و بی‌راهی چون همه رهبا باشد آن حکمت تو بهر این دکان طبع شور آب هر دو عالم را رواداری خراب من همی دانم که تو پاکی نخام وین سوالت هست از بهر عوام جور دوران و هر آن رنجی که هست سحرتر از بود حق و غفلت است. زان که اینها بگذرند، آن نگذرد. دولت آن دارد که جان آگه برد. حکایت در تقریر آن که صبر در رنج کار سهلتر از صبر در فراق یار بود آن یکی زن شوی خود را گفت هی ای مروبت را با یک راه کرده تای. هیچ تیمارم نمی داری چرا تا بکی باشم در این خاری چرا گفت شو من نفقه چاره می کنم، گرچه اورم دست و پای میزنم. زنم. نفقه و کس وست واجب ایسنم، از منت این هر دو هست و نیست کم. آستین پیرهن بنمود زن، بس درشت و پروسخ بود پیرهن، گفت از سختی تنم را می خورد، کس را کسو از انسان آورد؟ گفت ای زن یک سآلت می کنم، مرد درویشم همین آمد فنم، این درشت است و غلیز و ناپسند، لیک بندش ای زن اندیشمند این درشت و زشت تر یا خود طلاق، این ترا مکروه تر یا خود فراق. همچنان ای خاجه زن از بلا و فقر و از رنج و مهن، لاشک این ترک هوا تلخیده است. لیک از تلخی باده حق بهست. گر جهاد و سام سخت است و خشن، لیک این بهتر زباده ممتحن. رنج کهی ماند دمی که ظلمنان چونی تو ایران جور من. نگوید، که نه آن فهم و فن است لیک آن ذوق تو پرسش کردن است آن ملیحان که طبیبان دلند سوی رنجوران با پرسش مایلند. بر هزار از ننگ و از نامه کنند چاره سازند و پیغام کنند. ورنه در دلشان بود آن مفتکر، نیست معشوق ز آشق بی خبر ای تو جویای نوادر داستان، هم فسانه عشق بازان را بخوان بس بجوشیدی در این عهد مدید، ترک جوش هم نگشتی ای قدید، دیده عمر تو داد و داوری، بانگه از نادیدگان ناشی تری. هر که شاگردیش کرد، استاد شد. تو سپستر رفتهی ای, ای کور لد. خود نبود از والدینت اختبار، هم نبودت عبرت از لیلو. نهار پرسید از آن پیر کشیش که توی خواجه مسنتر یا که ریش گفت نه من پیش از او زاییدم بیز بس جهان را دیدم گفت ریشت شد سپید از حال گشت خوی زشت تو نگردیده است وشت او پس از تو زاد و از تو بگذرید تو چونین خشکی ز سودای ثرید زو بران رنگی که اول زاده ای. یک قدم زان پیشتر ننهاده ای. همچنان دوغ تراش در معدن خود نکردی زو مخلص روغنه هم خمیری خمره تینه دری گرچه عمری در تنور آزاری. چون هشیشی پا بگل بر پشته ای، گرچه از باد هوس سرگشته ای همچو قوم موسی اندر هر تی، مانده ای بر جای چل سال ای سفی می بی هر روز تا شب هروله. خیش میبینی در اول مرحله. نگذری زینباد سی ساله سالتو تا که داری عشق آن گو تا خیال عجل از جانشون نرفت بد برایشان ت، چون گرداب به تفت. غیر این اجل کزو یا بیدهی، به بی نهایت لطف و نعمت دیدهی. گاو تبعی، زن نکوی های زفت، از دلت در عشق این گوساله رفت. بار اکنون تو ز هر جزبت بپرس صد زبان دارند این اجزای خورس ذکر نعمت های رزاق جهان که نهان شد آن در اوراق زمان روز و شب افسانه جویانی تو چوست جز و تو فسانه توست جوز و جزوت تا برست است از عدم چند شادی دیدند و چند غم زانکه که لذت نروید هیچ جزو بلکه لاغر گردد از هر پیچ جازو جزو مندو آن خوشی از یاد ره بل نرفتان خفیه شد از پنج و هفت همچو تابستان که از وی پنبه زاد ماند پنبه رفت تابستان زیاد یا مثال یخ که زاید از شتا شد شتا پنهان و آن یخ پیش ما هست آن یخ زان یادگار یادگار سیف در دی این سمار همچنان هر جز و جزبت ای فتی در تنت افثانگوی نعمته چون زنی که بیست فرزندش بود، هر یکی حاکی حال خوش بود. حمل نبود، بیز مستی و زلاغ، به بحار کی شود زاینده باغ. حاملان و بچگانشان بر کنار، شد دلیل بازی با بهار. هر درخت در رضا کودکان همچون مریم حامل از شاه نهان. گرچه در آب آتش پوشیده شد. صد هزاران کف بر برو جوشیده شد. گرچه آتش سخت پنهان می تند کف ب ده انگشت اشارت می کند همچنین اجزای مستان وسال حامل از های حال و قال در جمال حال وامانده دهان چشم غایب گشته از نقش جهان آن موالید از ره این چار نیست لاجرم منظور این ابزار نیست آن موالید از تجلی زاده لاجرم مستور پرده ساده اند زاده گفتیمو حقیقت زاد نیست و این عبارت جز پی ارشاد نیست هین خمش کن تا بگوید شاه قل بلبلی مفروش با این جنس گل این گل گویاست پر جوش و خروش بلبلا ترک زبان کن باش گوش هر دوگون تمثال پاکیزه مثال شاهد عدلند بر سر وسال هر دوگون حسن لطیف مرتزا شاهد احبال و حشر مامزا. همچویخ یخ در تموز مستجد هر دم افسانه زمستان می کند. ذکر آن اریاه سرد و زمحریر اندر آن ازمان و ایام اسیر. همچون که در وقت شتا میکند افسانه لطف خدا قصه دور تبسم های شمس وان عروسان چمن را لمس و تمس حال رفت و ماند جزوت یادگار یا از او واپرس یا خود یاد آر چون فرو گیرت غمت گر چستیه زان زاندم نومید کن واجستیه گفتیش ای غصه منکر به حال راتب انعام را زان کمال گر به دم نت به و خرمیست همچو چاش گل تنت انبار چیست چاش گل تن فکرتو همچون گلاب منکر گل شد گلاب اینت اجاب از کپی خویان کفران که دریغ بر نبی خویان نسار مهر و میغ آن لجاج کافر قانون کپی است و آن سپاس و شکر منحاج نبی است. با کپیخویان تحتک ها چه کرد، با نبی رویان تنسک ها چه کرد. در امارت ها سگانند و عقور در خرابی هاست گنج از و نور. گر نبودی این بزرگ اندر خصوف گم نکردی را چندین فیلسوف. زیرکان و عاقلان از گمرهی دیده بر خرطوم داغ ابلهی.